و, و و سلام علا خیر خلقی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین المصطفى محمد سلالله خوالیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی عرباقی و خراو مقدم الان افتادا فلا انا طلا الا اعدایه من الان لا قیام یوم خوب خب بنا شد در این شبه ماه مبارک رمضان در دنباله مباحث سال گذشته یا سالهای گذشته یه شرح کوتاهی رو عرض کنم بر نامه امیرالمؤمنین عليه السلام به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در نهج البلاغه نامه سیوی کمه خلاصه در دنباله این نامه دیشب از این جمله شروع کردیم که امیر علیه السلام در هدف خلقت، هدف آفرینش انسان فرمودن که وعلم یا بنی انکه انما خلق تل الآخره لال دنیا و لال الموت و لال این خیلی کلام خلاصه حکمت آمیزیه، کلام ارزشمندیه که به فرزندشون میفرماین که بدان که خدا. تو رو برا آخرت خلق کرده نه دنیا و برا مرگ خلق کرده نه زندگی خیلی جمله فوق العاده که یعنی دنیا جای ایش نوش نیست بعضی خیال کردن دنیا جای ایش نوشه میگن ما دو روز هر چی میتونیم باید بیشتر لذت ببریم نه میفرماید که تو برای آخرت خلق شدی بعد توشه برداری باید بندگی کنی شبیه اینو قرآنم در آیات متعددی گفته اینم مباحث دیشب بود دیگه قرآن میفرماید ما خلقتل جن و الانس الا لیعبدون میگه ما جن و انس و خلق نکردیم مگه بندگی بکنن عبادت بکنن یعنی توشه بردارن چون هدف یه جای دیگه است. دوجه بفرمید تو جمله منفی استثناء که بیاد میگن فاده حرو می کند دیگه من من یه وقت بگم من نیامدم اینجا مگر اینکه روزه بخونم رو یا نیامدم اینجا مگر اینکه سخنرانی کنم یعنی هیچ کار دیگه ای نمیکنم و هر کار دیگه ای بکنم از هدف هم دور شدم تو جمله منفی استستا میاررد دیگه خدا میگه من خلق نکردم جن و انسان مگه برن که عبادت بکنن. یعنی هر کار دیگه هر کار دیگهی غیر از این بکنن بیراه رفتن راه حکوم کردن چون اصلا خلق نشدن مگه برا همین آدمی فقط اون لحظه ای تو سراط مستقیمه که داره بندگی خدا میکند بله از سراط خارج شده بیراحه داره میره اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد آدمم هم همونجا فقط لذت میبره که تو سرات مستقیمه اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد باقی همه بی و بلحوسی بود باقیش بیراه است لذت هم نداره همش رنجه همش گرفتاریه فرای آزم وقتی تو سراته لذت میبره. بعد حضرت استدلال میکند میفرمایند که برای همین فرمایش کارا این بحث دیشب بود دیگه دیگه تکرارم یه مقدار کمی کردم. اما در دنبالش میفرماید که و انکه فی قلعتن اون بعدم میفرماید و دار بلغه خب نحج الولاغه من همیشه میگم قرآن اصلا لغت سخت و پیچیده نداره قرآن خیلی لغاتش ساده است من اصلا هر کسی یه دو سه بار نگاه کنه رو یاد میگیره چون اصلا لغت سخت قرآن نداره ولی خب نه جلبلاغه اینجونه نیست. بعضی لغت ها مثلا همین قلعه من لغتش رو نگاه کردم یعنی جایی که انسان باید از اونجا کوچ کنه حضرت میخواد استدلال کنه که ما برای اینجا خلق نشدیم میگه ما توی سرایی قرار گرفتیم که ناچاری از اینجا کوچ کنیم بابا هامون هم رفتند همین روزام نوبت ما میشه پس این معلومه ما اینجا نیستیم به این توجه بفرمایید اگه ما برای اینجا خلق شده بودیم کوچمون نمی دادند مرگ سراغمون نمی اومد پس این نشون میده ما برای اینجا خلق نشدیم اما آخرت نه آدم آخرت که میره دیگه کوچش نمیدن چون مال اونجاست ماز آنجاییم و آنجا میرویم ماز بالاییم و بالا میرویم اصلا ما اگه مال اینجا بودیم که دق میگه ما باید بریم پیش موسی. خدا اونایی که آشغن باید برن پیش موسی اینجا چیه؟ اگه ما بدیم یه جا امام حسین بشینه امام دوخش جمعش جمع ما که مال اینجا نیستیم که آگه مثلا آدمی اگه مال اینجا بود دق می‌کرد امیرالمومنین وقتی که اون زربر رو به سرش زدند گفت فست و رب بل کبه طرید ازن گفت گفت رفتم که رفتم بچه‌ها ما 63 سال منتظره همچین ساعتی بود که بره با کی مشهور بشه با حضرت زهرا مشهور بشه با پیغمبر اکرم مشهور بشه نه اینجا اینجا چیه عاشقای امام حسین دوست نداریم بریم پیش امام حسین اصلا شما بعد بگین مرگ کی میاد سراغ ما که ما رو سنت به معشوقمون مین توجه بمانم ولی آدمایی بگه من من هی دعا کنم که ایشارالله بهشت بری خب تا نمیری که نمیری که بهشت گردنه نمیره که من همش دعا کنم که خدا ایشارالله شما رو با امام حسین خب تا نمیری که با امام حسین مشهور نمیشه که من هی دعا کنم خدا ایشارالله ما رو با امام حسین مشهور کنه خب آدمی تا نمیرد که با امام حسین مشهور نمیشه قول این میگن سرایی که انسان ناچار از او کوچ کنه شاید هیچ چیزی نباشد که یقینی تر از این باشه بدیهی تر از این باشد که همه ماها میمیری دیگه من الان خیلی آقای اون میگم 100 سال بعد یکی از ماها دیگه تو رو زمین نیسته اینوانی که ما اون اینجا نیسته ما برای اینجا خرق نشدیم که اینجوری کوچمون میدهن گذشتگانمون رفتن ما دیر یا زود با اونا ملحق میشیم و دار و بعدم قرآنم و گفتم در تایید فرمایش امیر المومنین مثلا چند تا آیه قرآن بخونم خدا تو قرآن میفرماید کل نفس زائقت الموت همه و طعم مرگو بچشن آدمی نمی می طعم مرگو می چشه نه نه مر... ما مرگو می می رونیم <تصفيق> ما جون مرگو می گیریم مرگو از بین می بریم ولی ما هستیم شما طعم مرگو که می چشید دیگه نمی می ولی ب... من میگم ببخشید اینجوری صحبت کنم میگم بعد طعم پیتزا رو بچشید شما پیتزا رو از بین می‌برید طعمشو می‌چشی دیگه اون از بین میره شما از انسان طعم مرگو می‌چشد یعنی مرگو از بین میبرد. نابود میکنه خودش رو خدا تو قرآن به پیغمبر میگه انکم میت و انهم میتون این خیلی تعبیر فوق العاده ای به پیغمبر نمیگه تو میمیری میری میگه مرد ای این دیگه خیلی عجیبه. اگه میخواست بگه تو می میری بعد می گفت انک مثلا صد تو در آینده نزدیکی میمیری نه میگه انک میتون میت به کی میگن به مرد میگن میگه تو مرد ای. پیغمبر میگه خب من که تکون میخورم میگه من تکونت میدم بچم نکند فریب نخور من حول و قوه منه که تو رو بلند میکنه میخواد این پیغمبر نماز که میخون میگه به حول الله و قوتهی ای اقوم و اقعد من خداست منو بلند میکنه خدا منو میشونه بره, بره کنار ما یه چوبیم اون حول قوه خداست که من رو تکون میده به حرکت در میاره به پیغمبر میگه تو میمیری دیگه از تو که بالاتر نیست اشرف مخلوقاتی دیگه تو هم طعم مرگو میچشی بقیه که دیگه اصلا خودشونه بگن بقیه که دیگه اون که اشرف مخلوقات میمیرد تا برسه ما قرآن میفرماید کل من علیه ها فان هر چی که شما به چشم میبینی فانی میشه و یبقا و وچ فقط خدا باقی میمونه هرچی که می... میمونه ازرایل هم میمیره همین اسرائیل که آقا همه رو میمیرونه آخر خودش میمیره جبرهیل هم میمیره آسمونی ها باقی نمیمونن زمینیام از بین میرند. همه بگه اون موقع که هیچ دیاری نیست خدا فریاد میزنه لمن الملك اليوم. بله <تصفيق> حالا به قول رهبر معظم انقلاب میگفتش که ترامپ نهره میکشه وجه. میگه قبل از تو گردن تر از تو از این نره‌ها دران زیر خاک. نره نکش، سر صدا نکن. و خدا خیلی قلدُرتر از این ترامپ بوش بود. خیلی از این قلدُرتر ریگان بود. شما یادتون نیست آیوی اینا خیلی قویتر از ترامپ بودن اینا چقدر نهره زند الان زیر خاکن کرما دارن اونا رو میخورن مجمع ما انو هستیم حالا هم یه مدت این نهره میکشن کجا رفت یزید ابن معاویه کجا رفت خانون رشید کجا رفتن آقا اینایی که همه قلو کجا رفت نمرود این میگه انا اوحی و اون از این حرفا گیر ترامپ نمیزنه چون می اون میگه انا اوحی و امید اون خیلی گنده تر از این میگه میگه من هر کی رو بخوام میکشم هر کی رو بخوام زنده میکنم او یعنی جون ما دست تو میگه دست منه گفتن خب یکی رو بکش نمی یه نفر بند خدا بی گناه داشت راحت می شود. گفت گردنشو بزنی <تصفيق> خب هر چاقو که شیخ بیتونه این کار رو بکنه شما میتونید یه قمه برداری بری گردن یکی بده. این مگه کشتنه این مگه مالک حیات و موته گفتن خب یکی رو زنده کن مینی؟ یکی رو میخواستن اعدام کنن بالا چوبه دار بود گفت ولش کنیم بره گفت زنده شم می کنم تموم بود دیگه تموم بود خب بره بلش کو بخشیدنم میشه بی میشه گردنشو میزنه <تصفيق> آدمی که بعد بالا چوبه دار بره میگه رهاش کنید بده انا انا و امید خدا کو بالا بس عجب اینا اینا چیزی که از اخا یه عجلی دارن اینم خوبه الان ترام چیز خوبیه همه دارن با این امتحان میشن اینا اسباب امتحان خدا هست اینا بد نیست که خدا میخواد اینا باشند تا عجلشون برسه هستن حالا دو روز مونده سر رو مونده سرازیری قبر دیگه آقا اینا سرازیری مرگن و نمیفهمند خیلی از اینا آقا سرطان دارن و نعره میکشند یعنی شیمی درمانی میشه و میگه من میکشم از به میبنم میگن آقا خودتو بپا، تو حالا میخوای بکشی؟ این توجه با... خب اینا یه عجلی دارن تا عجلشون شروع میکنن ازا جا عجلهم لا یستقدموند ساعتن و لا یستقرون اما عجلشون که برسه یه لحظ خدا که بذارن نمرود عجلش برسد وقتی یه دونه پشه مریض احوال فرستاد. <تصفيق> پشه من امیشه تو سخنانی میگم خدا که سر نمرود بمب نمیندازه که مورچه که زدم نداره که اصلا خدا اگه بوم مینداخت سرن حکیم نبود من الان بدم آقا پشت لونه مورچه ها جی بذارم بگم جرعت داریم تکون بخورید اصلا معرفی می‌کنن، امین آباد میگن آقا شلنگو بگیر میگن آقا شلنگو بگیر آب بگیر مورچه ها رو آب میبره دیگه مرد حسابی رفتش رو آرفی جی آوردیم توپ چرا آب آدم نادون میاد سر مورچه توپ میریزد اخه کیه که نمرود سرش توپ بندازند یه مورچه مریض احوال به مورچه گفت برو چی پشه پشه تو بینیش کارت نبوشه <تصفيق> بنده خدا نیمه جونم بود مریض بود دیگه گیر کرد اونجا آه این نغره میزد از دست این پشه نغره تو, تو... تو... کوقش جبرئیل اومد تو گوشش گفت که میمیرونی زنده هم میکنی یا نصف جون این پشر رو بگیر بمیره دست و پا نزنه میفته بیرون خلاص میشه چون الان چون نیمه جون داشت دست و پا میزد دیگه بمیره دست و پا نمیزنه میفته یا نصف جونش رو بهش بده میپره میاد بیرون خلاست میکنه گو آقا من اصلا یه دونه پشر رو نمیتونم نصف رو بدم گو آقا تو مردنی هستی نعره میکشی تو خودت الان گرفتاری میگی من چکا میکنم. یه پشه از پادر آورده یا یعنی این سپاه ابرهه وقتی می اومدن کعبر رو خراب کنن فیل آورده بودن چی آورده بودن خدا که آقا سر اینا بم نمینده که ابابیل ابابیل میگن آقا پرنده هایی از از گنجیش کوچیک تر من توجه بوفم از گنجیش کوچیک به اینا گفتش که برین تو آسمون سنگ با خودتون سنگی که یه گنجش میتونه ببرید چقدره <تصفيق> نمیتونه زد. یه سنگ ریزه دیگه یه چیزی میبردن گفت نشونه هم نمیخواد بگید همینجا بلش کنید کارتون نباشه اونها که نشونگیری گیری نمیکردن که همینجا رها میکردن این میخورد به سر سپاه ابرهه خودش با فیلش پودر میشد میرک مثل کاه جویده شده شد. پودر میشد هم میرکن زنی یه دونه دو تا ابرهگو عقب نشینی کردن چوب می‌کنه سپاه با اون عظمت و آقا پرنده های مثل ابابیل از پادرو حالا این تمدن آمریکا رو می‌بینی این با یه دونه زلزله از بین میره حالا خدا نمیخواد اون وقتش نشده با یه دونه طوفان اینا می حالا یه چیزایی میگن علم تر کیف فعل ربک آب ارامزات الاعاد التي لم يخلق مثلها في من نميدم آقا این, این چیه میگه ندیدین ما با قوم آد چه کردیم اون شهر بزرگی که به نام ارم درست کرده بودند میگه مثل این شهر در طول تاریخ ساخته نشده حالا نمیدونم تا زمان قرآن ساخته نشده یا تا امروز ساخته... ما اینو نمیدونم آقا چون قران تا زمان نزول قرآن یه همچین شهری نبوده یا تا خود امروزی همچین شهری نبوده شما میبین آقا اینا رو خدا به چه روزی انداخته قوم عاد قوم سمود اینا چیزه اینا آقا همه میرند امام حسین هست <تصفح> حضرت زینب هست به خدا اینا زحمت درست میکنن البته نمیگم زحمت درست نمیکنن بلی میرند بخوا... این خطبه حضرت زینبه تو مجلس یزید یزید خیلی شلوغ میکرد بیبی بی خیلی خونسرد گفت کد کیدک این سخنرانی هست به زینب این شاکار ها بعد افتخار کرد به یه همچین کد کیدک گفت هرچی میتونی مک کن هرچی بلدی رو کن وسع سعیک تمام تو به کار بگیر والله لا تمهوز کنام به خدا قسم یاد ما رو نمیتونی از دلها محو کنی. سبط است بعد جریره عالم دوام ما. گفت هزار تا مثل تو میرن زیر خاک کربلا است. امام حسین هست، محبت زینب هست. کجا رفت یزید؟ یزید میره، معاویه میره، ابن زیاد میره اما اونی که میمانه سه ساله ابوالفضل، <تصفح> رقیه میماند. حضرت علیه اصقر میماند دارد اینو میفرماید میفرماید که تو توی سرایی قرار گرفتی که ناچاری از این کوچ کنی پس مال اینجا نیستی و دار و بلغه بلقه یعنی چی؟ یعنی سرزمین نیست سرایی که بعد ازش توشه برداری آج پس اگه ما مال اینجا نیستیم ما رو برای چی آوردن اینجا؟ میگه آقا آوردن توشه برداری بردار لازمت میشه توشه بردار بلغه یعنی سرزمینی که شما یه چند روز اینجا مهمانین گفتن توشه بردارین تزودو قرآنم میفرماید تزودو از این فرصت عمر استفاده کنین توشه بردارین آقا چی برداریم؟ میگه اگه از من خدا میشنوی، اینه خیر از ذات از تقوی اگه از من میشنگی میگه بهترین توشه اینه که تقوا برداریم توشه ای از این بالاتر نی تقوا چیه <تصفيق> الان میگن هدف روزه تقبا. مارم از اون هدفش تقبا. همهش تقوی دیگه بران همش میگه تقوی در مورد اهل بیت گفته شده وسیعت و کم و تقوی. یعنی هر کی به شما میگو ما رو نصیحت کن شما میگو تین هر کی میگو یه سفارشی ما رو بکن شما غیر تقوی نمیگفتین وسیعت و کم و تقوی. تقوی چیه؟ به پیغمبر اکرم گفتن تقوا چیه؟ پیامبر فرمودن تقوا دو کلمه است کتب علیکم و سیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون روزه هدف نیست خدا روزه هدف نیست تقوا هدفه اصلا خدا گشنگی شما به خدا نمیریسه تقوا به خدا میرسه خدا براش مهم نیست شما یه نهار نخورید نمیخوادم صرف جویی کنه اتفاقا مصرف مواد غذایی تو ما رم از اون 4 5 برابر ماهای دیگه‌ست اصلا خدا صرف سر پجوینی نگفته یه نهار نخورن تو جیب بمونه نه تو جیبش نمیمونه که افتار سه برابرشو میخورن این افتاری هایی که آقا مردم میدازن که اصلا تو شعبان کجا اینو هست اون زمان شهید رجایی هم که کپونی بود هر وقت مارم از اون میشد دوبل اعلام میکرد شهید رجایی مثلا میگفت قند دوبله، شکر دوبله، روغن دوبله برنج دوبله چون مصرفش بیشتره مصرف موادق اصلا بحث صرف جوینی گرسنگی شما هم به خدا نمی رسد تقوا تمرین تقوا ولی شما یه ما گناه نمی‌کنی خدا میگه ببین میشه ادامه بدید میشه نگه نمیشه یه ما اول وقت نماز می‌خونیم میگه ببین میشه میشه آدم بندگی خدا کند اینو ادامه بدیم تمرینه, تمرینه این است که انسان تقوا رو ملکه کند آقا تقوی چیه؟ از پیغمبر سوال کردن تقوی چیه؟ پیامبر فرمودن هرچی رو بلد نیستی برو یاد بگیر آدام تق... آدام های با تقوی میرن یاد میگیرن از همین یاد گرفتن تقوی هست همین شما برید قراعت نمازتو درست کنی تقویه آدم با تقوا میره قراعت نمازشو درست میکند به من که رسید میگه آقا من یه قراعتمو میگم ببین این درسته این تقویه است خود این تقواست. به آدمی میرسه آقا تجویدش خوبه قرانش خوبه مثلا استاد قرنه میگه آقا من این نمازمgin هم دو سورمو میخونم ببین این درسته الان من همیشه این مثال رو میذارم شما فرض کنید که دولت اعلام کنه که من این یارانه‌ها رو دیگه تو اون حساب‌های قبلی نمیریزم بعد حساب جدید باز کنین به ستاد بسیج اقتصادی اعلام کنین این حساب جدیدو از این ما اون تو اون حساب میریزیم اخبار ساعت 2 میگه این آقا میشنوه که اخبارگو آقا حساب جدید میخواد اما شب که میاد مسجد میاد پیش من میشینه میگه سلام علیکم سلام علیکم هیچ وقت به شما نمیومد حالا این دفعه میاد بعد میگه که حاج آقا این یارانه ها چی شده چک میکنه میگم پدر جان دیگه تو اون حساب های قبلی نمیریز بعد بری صبح حساب وا کنی حساب تو به ستاد بسیج اعلام کنی این ما تو حساب جدید میریزن میگه آره خودم هم شنیدم خواستم مطمئن شم ببین همین تقواز شب دامادش میاد دامادش بانکیه کارمند بانکه میگه حسین آقا مدرد میخوام این یارانها چی شده میگه فردا صبح بیا بانکی حساب برادواز میکنم خودم هم اعلام میکنم به ستاد برزی تو اون حساب دیگه میاد میگه آره حاج هم تو مسجد گفتم چک کنم سه جا چک میکنه که چلو پنج دو من دستش نره اما اگه بگی آقا بیاق میگه آقا هر جوری بخونی قبوله این بی تقباییه نه هر جوری بخونی قبوله میگه خدا قبول آقا خدا تر... به یکی گفتن که چه جوری قسل میکنی گفت من اول طرف راستم و میشورم بعد سرگردنم و بعد طرف چپ گفتن آقا چرا اینجوری گفت من ارتشم بودم میگفتن از راست بچن راست بخواست سرباز خونه میگن شما قیامت رو قبول میکنن آقایون میگن آقا تو یه جا به بپرسی آقا چه چجوریه تو قص از راست به چپ میکنی این بی بیتقواییه این حضرت عبدالعظیم حسنی کم شخصیت نیست چند امام از او به نیکی یاد کردن پیر مردی بوده این میاد پیش امام شد امام حادی اون موقع 20 سالش هم نبرد یه مرد وزین که چند امام رو شاگردی کرده اومد گفت من دینمو به شما این از معروف این حدیث به نام حدیث عرضه دین گفت دینمو به شما عرضه می کنم این دین روز قیامت از من قبول میشه امام فهمودن به گله یه جوونه مثلا 20 ساله گوش میده یه پیرمرد 80 ساله فقیم داره میگه گفت من خدا رو اینجوری میشناسم، معاد رو اینجوری میشناسم، نماز رو اینجور میدونم، خمس رو اینجور، عمل رو ارزه کرد، عدیسش هست. امام فرمودن این دین رو اگه به این دین از دنیا بری به دین اجداد تاهرین من از دنیا رفتیم. این, این تقویز، تقو... مسائلی رو که قالبن انسان به اونا احتیاج داره، بعد به یاد بگیرد. تقوا دو کلمت یک کلمش اینه که اونی که بلد نیستی برو یاد بگیر کلمه دومش چیه هرچی هم بلدی عمل کن دیگه آخر تقواست دیگه شما آقا اگه اونی که بلد نیستی بری یاد بگیریم هرچی هم بلدی عمل کنی میشه آیت الله اعظم بهجت از اونم جلو میذنی این کم چیزی نیست آقا جان. آدمی کم چیزی نیست که هر چیزی رو که میداند عمل بکند این تقوی بهترین توشه اینه دار و بلقه آقا مالو برای چی آوردن اگه ما مال اینجا نیستیم اگه ما باید کوچ داده بشیم اگه ما باید طعم مرگو بچشیم خب مالو برای چی میگن میگد که اینجا دار توشه برداشتنه پسرم و طریق علال آخره و این مسیریه که ما باید تی کنیم به آخرت برسیم اگه شما آقایون یه جمله براتون بگم اگه دیدگاه انسان نسبت به دنیا اینجوری بشه دیگه حرس از بین میره تمه از بین میره بخل از بین میره رشوه از بین میره اختلاص از بین میره. همه این آقا برای این که ما نه دنیا رو شناختیم نه هدف خلقت رو میدانیم اگه همین جملاتی که امیرالمومنین المومنین فرمودن برای کسی جا بیفته که آقا دنیا جای ایش و نوش نیست جای توشه برداشتنه اینجا باید برای شب اول قبرمون کار کنیم برای اونجا باید چراغ بفرستیم آدمی آقا اول باید نگرشش رو درست کند اول باید دیدگاهش درست بشه انبیا اونی که خیلی اهمیت میداددن به اعتقادات مردم اهمیت میدادن اونها می, دادن. اونا می گفتن معاد اونا می گفتن توهید خدا رو بشناسد معاد رو بشناسد دنیا رو بشناسد هدف خلقت رو بشناسد اگه اینا رو کسی فهمید دیگه دنبال هرس نمیره دنبال تمه جمع چی بکند؟ این همه هرس این همه بغت این همه حلال و حروم این همه رشوه این همه اختلاس این همه دزدی اینا هم چی ها برای این که نمیدونند برای چی خواهد شد اما کسی اینا رو فهمید میشه حسن ابن علی هر چی داشت انفاق میکرد حالا یه یه شب روی سسمال امام که اصلا آقای دا... من نمیرم نسل امروز باور میکنن یا نه او دو مرتبه همه سروتشو در راه خدا داد <تصفيق> آقای اون این شوخی نیست داد اصلا نمیدونم من اصلا محیر الاغوله این روش اخو فکر بکنید تا نیمه رمزان که تولد امام هستنه. دو مرتبه همه سروتشو داد از نو شروع کرد چرا؟ چون میدونست خدا لنگش نمیذاره روزیش میده او میدونست هرچی در راه خدا انفاق کنه خدا جاشو پر میکنه چون خدا چی میگه آقای خدا میفرماید که شما هرچی در راه خدا انفاق بکنید و هو یخلفو خدا جاشو پر میکنه ما بذار اایه رو کامل بخونم ماه قران دیگه ماه نزول قر ما انفقتم من شیئن فهو یخلفو هر چی انفاق کنی من جاشو پر میکنم چشم رو دیدین آقا یک کاسه آب برام دید جاش پر میشه اینا این که انفاق میکنن یه بار دو بار همه ثروتشو داد سه بارم هر چی داشت نصف کرد سه بار نصف کرد حتی من دیدم دو تا عباداش یکی رو داد دو تا کفش یکی رو داد دو تا فرش یکی رو داد دیشب گفتم، ما خوب جایی شبه میام اینجا سر صفره حسن ابن علیه هیچ که دست خالی نمیمونه در کی آمده در خانه حسن ابن علی و دست خالی رفته اصلا من ندیدم کسی در خونه اهل بیت اومده باشه و دست خالی رفته باشه من تو عمرم ندیدم فقیر آمد. پیش رسول اکرم پیغمبر اما درسه پیغمبر گفت الان من چیزی تو بسات ندارم ولی یه جا میفرستمت که میدونم هیچی اونجا دست خالی بر نمیگرده گفت کجا برم گفت در خونه دخترم هست زهرا سلام الله علیه میدونه نرفتیم که ما رفتیم مسجد و نبی بعد این برادرمون بعد, نگو بعد و ها سرنگونشند مثل کرولاشه. من این عروه این ما کرولا رفتیم خیلی اون تهرانه هرچی حیعتی بود ما اونجا میدیدیم <تصفح> اصلا انگار تهرانه انگار تهرونی ها آمدن رو گرفتن من نیم دونم میلیون تهرونی اونجا بود من یه جلسه رفتم سخنرانی کردم شاید الان ها من بعضیشون بودن بگم 15000 هزار نفر 20000 هزار نفر تهرونی گریه می کجا؟ بغل حرم امام حسن حالا یه روزم اشان الله مدینه اینجوری میشه یه روزم امینه 20 میلیون زائر امام حسن اومدن مدینه باید نکه اینجوری نمیموند که به خدا اون باید صفا دارد اصلا ترونی ها اومدن مدینه رم گرفتن سینه زن اومده برای امام حسن داره سینه میزنه این توجه بپرموید حالا ایشالا برید مسجد و نبی اصلا در خونه هست زهراب باز میشه به مسجد اینه که پیغمبر اینجا درو در میدید این در باز میشد به مسجد پیغمبر نگاه میکرد این فقیر رفت در زد رفت تو خب فقیرم و دستم خالیه بی بی گفت من چیزی که تو بسات ندارم ولی این بندو. میگن این گردمبند و دختر تلهه از حضرت خدیجه گرفته بود از خدیجه وقتی از دنیا میرفت بیبی پنج سالش بود به دختر تلهه گفت من شب زفاف فاطمه نیستم کادو بش بدم من یه چیز گردنش بندازم اینو یه جا تو بخچه قایم کن مخفی کن شب زفاف از طرف من بنداز گردن فاطمه اینو کی انداخته بود؟ دختر تلهه گردن بیبی بی. که بیبی بی مثل بارون گریه میکرد این کادو مادر رو شد زفاف و این چقدر برای دختر یتیم ارزش دارد یادگاری مادرش رفت اینو آورد اتباقا مشکم زد خیلی معترش کس گفت ببر بفروش ایشالله برات فرج میکنه کی رفته داره اینا درس آقای اون نه پیغمبر بخواد وقت شما رو بگیرد میشه شما آقا بری در خونه فاطمه فاطمه روش از شما برگردوند <تصفح> <تصفح> <تصفح> اصلا آقا این میشه این شدنیه میشه فقیر بیاد در خانه فاطمه زهرا دست خالی برد؟ میشه شما از راه دور بگی من میرم سر سفره حسن ابن علی بعد دست خالی بریم بیرون گر گدا کاهل بود تفسیر <تصفح> س من که در مورد من این شعرارم خدا شده در مورد اهل بیت من در مورد اهل بیت میگم مثلا کسی کاهلم بیاد اینا بهش میدن شما اگه بیا اینجا بخوابیم آقا امام مثلا کسی بیت میده اصلا بیا اینجا با موبایلت بازی کنی امام مثلا کسی بیت میده میگه بالاخره اومده دیگه مهمون منه مهمون که همش نود. خودی باشد که همه جور مهمون دارن دیگه اینا گفتن اکرم زیف ولو کانه کافر ها تو این داستان های شگفت از اینا دیگه کم میگم ما اینا رو جوانی هم زیاد میگوزید تو این داستان های شگفتی مال الله دستقیبه این کتاب خوبیه جوان ها داستان های شگفت مال حضرت الله دستقیب تو اونجا هست یکی از علما خواب دید که امام حسین دوتا ملک و فرستاد دوتا از ملک لیست اینایی که اومدن تو معیز من نشستن ورد و بیار اینا رو لیست میکنن میبرن امام مر میکنه بایگانی میکنن به خدا اسماتون هست خودین اسم شما تو دفتر امام زمان هست من قسم میخورم هست بایگانی شده سبته عشقاتون هست نالهاتون هست الان آقا زبط میکنن الان میگیرن فیلمشون خدا آلا چه اینا رو بشر میکنه خدا ببین چه خدا خود عشق تو میاره نشونت میده میگه عشقاشو بریزین رو آتش جهنم همه رو خاموش میکنه اینا رو الان بشر داره این کار رو میکنه گفت لیستشون رو بگیره اینا رفتن آقا نگاه کرد گفت من ببین خیلی سفارش میکنم لیست دقیق باشد حتی بچه ها باشن بیدید. حتی بچه شیرخار اگه اومده باشه اسمش هست اونجا ثبته گفتن آقا ما گفت نه برین. سه بار برگردون اینا های می اومدن گفتن آقا ما دقیق میاریم گفت دو نفر دم در رو کفشا نشستن اینا اسمشون نیست چون خود امام هم اشراف داره درست اینا میارن خود امام هم داره بینه. تا اینو گفت اینا گفتن آقا اینا ارمانی نصرانیان رو کنجکاوی اومدن اینا شنیدن مسلمونا عجیب گریه میکنن عجیب عزاداری میکنن اینا اومدن اونجا تماشا کنن اینا تماشا ان امام فرمود بالاخره تو مجلس من نشستن. هم. خدا من اینم قبول ندارم که کتاب اصلا کاهل بیای بهت میدن این وقتی داشت میله پیغمبر فرمودن که صداش کرد گفت رفتی پیش دخترم گواره گفت, گفت چی به داد آقا تا گفت چی داد مشتشو باز کرد گردم بند خدیجه رو پیغمبر عشق دیگه امونش نداد <تصفح> سه بار فرمودن ابوها فداها پدرش فداش ابوها فداها پدرش فداش امشب میخوام امشب میخوام دلاتونو ببرم در خانه حسن ابن علی در خانه صابخونه گفتم اینجا بیت الحسن دیگه دیشب گفتیم حسین امشب میخوایم بگیم حسن اب نداره آقا مثلاش ابن نداره شما جلو فاطمه بگید جانم حسن جانم حسین بگید بی می جان ما هم حسن رو دوست داریم هم حسین رو, رو دوست داریم هم برا حسن گریه میکنیم من برا حسین گریه به چشماتون جب اونا التماس کنین امشب برا حسن ابن علی گریه کنی الان اینجا خونه ما همسنه دیگه اینجا خونه قرغ نوره این چقدر نور تو خانه ما اما الان اگه بقی بودین یه شم مطبع. یه شم بالا قبر ما همسنه یه زائر هر جا هم بری میگن حسین قریب این هر جا بری میگن حسین قریب مده ها میگن این امام حسین الان بین الحرمین باشین قرغ نوره اون گنبد اون بارگاه اون شکون اون همه زائر من اربعین هیم به دوستان میگفتم یه داداش انقدر زائر داره 20 میلیون میگن 20 میلیون. یه برادر تو بقی یکی نیست بره سلام بهش بکنه. یه <تصفح> زاهر. امام حسین یه زنی داشت مثل رباب. میگن یه سال کربلا ناله میکنه. اما امام حسن روزه بود، روزدار بود، زنش جگرش رو پار پاره پاره کرد. <تصفح> کاش دیگه به همین اکتفا میکردن دیگه بدنشو تیرباران نمیکردن اما دلها بسوزه برا آقایی که رو دست برادران تنومن بشت بدنش تیر میگن آوردن کنار بقی این برادران نشستن یکی یکی تیرا رو از بدن امام حسن خارج میکردن هی hey, امام حسن میگو قارد زده کسی نیز انبالشو قارد قارت زده منم یه داداش مثل تو رو دارم به خاک می هی hey می گفت دیگه افرسته مال نمی کنم. دیگه محاسنم و خضاب نمی اما امام حسینی ها اینجا خیلی شلوغ بود خود عباس بود محمد حنفی اینجا شلوغ بود اومدن زیر بغل امام حسین رو گرفتن بلندش کرد رسمم همینه داغ در رو میان زیر بغلش رو نمیذارن خیلی گریه کنه نمیذارن خیلی بیتابی کنه اما کنار الگمه دیگه محرمی نبود همین دوزه بیان زیر بقل ما اونجا میگن یه دست به کمر گرفت یه دست به انان زلجنا هی hey صدا میزد دیگه کمرم شکست صلی اللہ خوالی که یا عبا